لا النافية للجنس لا النافية هي جنس شروع يعني نقول لا جنسو كله النافية ممكن مثلا موقعي كميان مقام لا بلعي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني نمازي وجود لا دارت رجل في الدار جنس مرد دارين این خونه وجود ندارت جنس رو نفی میکنه جنس کار چکار میکنه سه گروه از امسلو رو آورده است لا شاهد زورین محبوبون لا شجرت رمانین فی لا رای غنمین فی الحق لا, لا نفی جنس شاهده اسمش منصوب با فتحه زورین مضافون اله مجرور با کسرین محبوبون اسمش هست مرفوبا زمین لفظی چون این لا این لا در اصل از اخواته انها هست ولی چون در احکاماتی تر احکاماتی فرق دارد جداگانه بس میشه منظور در عمل ها ولی شرایطی داره مثل اونا نیست لذا بجاست که نحویان بحثش رو جداگانه مطرح کنند خب مسي عمل خبر ايشه مرفو مثل انه عمل میکنه لا اسم داره و خبر مثل انه اس عملش اغروه امسله أه... أه... دوفم لرا كبن فرسا في الطريق لا مقصرا في واجبه ممدوحون لا مجدا في عمله ممدوحون اینجا هم در امسله گروه اول شاهد مزاف بود ولی اینجا شبه مزاف اینجا چه هست؟ اگر مضاف می بود دیگه فرسن می شد ولی شبه مضافه چه هست؟ شبه مضافه لا راکبن فرسن فرسن چرا منصوب هست؟ مفعول به راکبن هست راکبن اسم لا هست ترکیبش کنیم منصوب با فتحه فرسن مفعول بیهی هست فی التاریخ هم جار و مجرور هست شبه جمله هست خبر لا هست محلن مرفو چون لا اسمش منصوب هست و خبرش؟ مرفو امثله گروه سوم لا سرور الدائمون اینجا سرور نه مضاف نه شبه مضاف مفرد منظورم مفرد نه اللحافظ تسنیه و جمع اللحافظ مضاف و شبه مضاف بودن ما دو مفرد داریم یه مفردی که در مقابلش مضاف و شبه مضاف میان یه مفردی که در مقابلش تسنیه و جمع میان منظور ما از مفرد این است که مضاف و شبه مضاف نیست لا سروره فس اینجا مفرده دائمون زمانی که اسم لای نفی جنس مفرد باشه مبنی هست بر حلامت نسبی که داشته اگر مفرد باشه مبنی بر فتحه میشه مصنع باشه مبنی بر الف میشه جمع مذکر باشه مبنی بر مبنی بر یا میشه مصنع باشه مبنی بر یا میشه راسی و جمع مذکر هم مبنی بر یا میشه و جمع موننس سالم مبنی بر کسر میشه چون علامت نصبشون در حال تعدیه مینا هست ولی اونجا دیگه میگیم منصوب اینجا میگیم مبنی بر علامت نصب خب لا سرور دائمون لا لا جنس سرور اسمش مبنی بر فتح دائمون خبرش مرفوع با زمه ظاهری لا زید دین مجتمعان چون زید مفرد هست منظور مضاف و شبه مضاف نیست اسم الله هست مبنی بریاه هست مجتمعانی خبر مرفو با علیف زیده این چی میشه آه اللحاز معنا میخوایی یا لحاز ترکیب خود چیشو میخوای معنیش یا ترکیب یعنی دو تا زید با هم جمع نمیشن مثل روشنی و خاموشی چرخیدن و نچرخیدن مگر مثلا نمیشه گفت که پنکه هم میچرخه هم لحاز زیده اینی مجتمعان اتفاقا این در اصوله فقه و چیزای دیگه هم بحثک هایی در موردش جایگاه های داره زیده این میشه و زیدین این جمع نیست مسننای برادر من مسننایه مصنا آورده دیگه این نه این اسم میشه اسم میشه منصوبه لای نفیجاز اسم منصوب یا مرفو خب منصوبش کرده دیگه یادش داده کتاب که درست نوشته ولی شما یک کنی باید لا زديني اگر لا مجدينة لا جاهلاتي همشون في يك شبه عند القواعد فتعمل الله النافية للجنس عمل انا فتنصب المبتدى ويسمى اسرها لا في جنس عمل ان رو انجام مده مبتدارو منصوب مگردانات اسمش نام مده الخبر و خبر رو مرفومی گردند و یسما خبرها و خبر لا نامیده می شود شست و نه یون اسمها اذا کان مضافن او شبیهن بالمضاف اسم لای نفی جنس منصوب می شود زمانی که مضاف یا شرح مضاف باشه و یبنا علامه یون سبو به اذا کان مفردن و مبنی بر علامت نصب می شود زمانی که اسم لای نفی جنس مفرد باشد مبنی بر علامت نصب میشه زمانی که مفرد باشه. مصنع و جمع نباشه. آره مبنی بر علامت نصب میشه. هفتات یشتارت و فی عملی ها اللا ید خوله علیه جارون. ولی شرط هست در عمل کردن لای نفی جنس که بر او حرف جر وارد نشود. و این یکون اسمها و خبرها نکرته اسم و خبر شعر دوتا چی باشند نکره باشند شما میبینید که لا سرور دائمان هم سرور نکره هست هم چی هم دائمان و الله یفصل اسم او عنها فاصل بین لا و بین اسمش فاصله نیامده باشه مثلا در مثال در مثال جان مخصیرم فی نه، این نه این گفته ببین اینجا دقت بفرما و الله یفت صل اسم آنها به فاصل بین اسم اون فاصله ای نباش تو سلن آورده تو مسله آورده، تو تمرین ها آورده ولی. انسان بگردد. ماننده لا فی الحديقه سبیانون و لا بناتون. لا فی الحديقه و لا بناتون. اینجا اگر چونین میبود جمله لا سبیانه فی الحديقه بین اسم, اسم و لا فاصله نیده بود. و الان بین اسم و لا چه هست؟ فاصله هست. منظور از این که بین اسم و لا فاصله نباشه. مثلا در امام سلیه که آورده همه شون شرایط؟ شرایطو دارد لا شاهده میبینیم که بین لا و شاهد هیچ فاصله وجود نداره ولی به این شکل پس بین لا و اسمش فاصله نباشه در امثله رعایت کرده فاقید شرط الاول باطل عملها اگر شرط فاقد شرط اول باشه یعنی منظورش این که نه شرط اول حرف جار اون داخل نشوده باشه نه خب میگه اگر اگر شرط اول نداشته باشه دیگه عملی انجام نمیده عملش باطل میشه عملش و این فقد شرط من الشرطين آخرین بطل عملها و اگر شرطی از شرط بعدی یعنی این که نکره نباشد اینکه اسم یا خبر چی نباشن؟ نکر نباشن یا اینکه بین لا و اسم فاصله اومده باشه همین که عمل انجام نمیده یعنی اسم منصوب و خبر مرفوعی نداره همین که واجبت تکرار بشه مانند همین مثالی که گفتم لا فل حدیقت اینجا یکی از شرط‌ها رو نداره اون شرط چی هست؟ شرط این هست که بین لا و سبیان چی اومده؟ فاصله اومده پس می‌بینیم که عمل انجام نمیده میشه الله فلحدی خطی سیبیانون مر منصوبش نمی کنه سیبیان رو همین که تکرار شده ولا بناتون ولا فهمیدید دستان به چه شکل یکی از این شرط ها رو نداشته باشه ستا شرطن اون موقع عملش میشه؟ باطل میشه اگر بله و اگر نکره نباشند چه فاصله آمده باشد بین الله و اسم این لا دوباره تکرار میشه و عمل انجام نمیده اگر معرفه باشه هم داستان به این شکل هست ماننده تمرین شماره یک شماره ده تمرین یک شماره ده لا دفتری معی ولا قلمی لا دفتری معی ولا معرفه هست چه هست؟ خوب پس این بله گفته بود اگر نکره نباشند یا فاصله آمده باشد هم این که عمل انجام نمیدهد و هم این که لا می شود؟ بله مثلا اینجا ده قد مفرماید لا فی البیت رجلون ولا امراتون لا فی الدار رجلون ولا امراتون فی اسمش نیست فی الدار شی بجمله رجل اسمش میتونه باشه ما میتونیم بگیم لا رجل فی الدار خب؟ ولی اگر بگیم لافید داری رجلون اون موقع بین لا و اسم شیم فاصله میاد فاصله که بیاد عمل باطل و تکرارش لازمیست